درود شنوندگان و هموطنان عزیز فرشید هستم آنابنی خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سمت شما برسونم. لطفاً با رادیو البوز همراه باشید. داشتن نامزد در آمریکا برای گرفتن ویزا کافی نیست. طبق مقررات جدید دریافت ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و پنج کشور دیگر نامزد و پدر بزرگ و مادر بزرگ جز اقوام درجه یک برای گرفتن ویزا به شمار نمی آین. ایران تهدید کرد که دست به اقدام متقابل برای اتباع آمریکا میزند تنها چند ساعت مانده به آغاز اجرای رسمی قانون محدودیت صدور ویزا آمریکا برای اطبای شش کشور وز... کشور وزارت خارجه ایالات متحده مقررات جدید این قانون را اعلام کرد این قانون رسما از روز پنجشنبه بیست و ژوئن برابر با هشت تیر به وقت آمریكا اجرایی شود. به گزارش آسوشیتد پرس وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 28 ژوئن مقررات مربوط به این قانون را اعلام کرد. دو روز قبل در روز دوشنبه دیوان عالی آمریکا بخش از قانون ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع کشورهای ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی را تایید کرده بود. بر اساس حکم دیوان عالی کسی که ثابت کند روابط حقیقی و قابل اعتماد با آمریکا دارد میتواند همچنان به این کشور سفر کند بر اساس اعلان وزارت خارجه اطبای شش کشور یاد شده که تقاضای ویزای آمریکا می کنند باید پدر یا مادر، فرزند، همسر، عروس یا داماد، خواهر یا برادر در آمریکا داشته باشند پدر و مادر بزرگ همسر خواهر و برادر و نامزد جزوه اقوام درجه یک به حساب نمی آیند و بنابراین کسی که این اعضای خانوادهش در آمریکا باشند نمی تواند با آنجا سفر کنند. قانون جدید شامل پناهجویانی که از شش کشور یاد شده هستند و هنوز تقاضای پلندگیشان پذیرفته نشده هم می شود و این پناهجویان در صورت نداشتن اقوام درجه یک در آمریکا از این کشور بازگردانده می شود یک خبر از فرانسه، محاکمه زن فرانسوی به خاطر کمک به پناهجویی ایرانی. محاکمه بناتریس اوره به اتهام کمک به عبور غیرقانونی یک پناهجوی ایرانی هم مرز در دادگاهی در شهر بلونسور در شمال فرانسه آغاز شده است. بناتریس اوره 45 ساله که متهم است با خرید یک قایق به مختار و دو پناهجوی خارجی دیگر در فرانسه کمک کرد تا با عبور از دریای مانش خود را به بریتانیا برساند خانم اوره هنگام کار داوطلبانه در اردوگاه پناهجویی در بندر کاله موسوم به اردوگاه جنگل با این پناهجوی ایرانی آشنا شده و به او دل باخته بود دادستانی خانم اوره را متهم کرده است که در یک شبکه قاچاق انسان عضویت داشته و مهاجران غیرقانونی را از فرانسه به خارج منتقل کرده در مقابل وکیل مدافع متهم گفته که انگیزه موکل او احساسات انسانی و ملاحظات بشردوستانه و از دادگاه خواسته تا خانم مورو را تبرئه کند. با تصمیم دیوان عالی آمریکا بخشی از فرمان مهاجرتی ترامپ دوباره اجرا می شود دیوان عالی امریکا روز دوشنبه 26 ژوئن تصمیم گرفته که تقاضای وکلای دونالد ترامپ در پرونده موسوم به فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا را بررسی کند. این تصمیم به معنای آن است که بخشی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی دادگاه‌های پوینت تر علیه فرمان اجرایی آقای ترامپ می می‌شود آقای ترامپ در اولین ماه های ریاست جمهوری خود فرمانی را امضا کرده که ورود شهروندان شش کشور ایران و سوریه و سودان، سومالی، لیبی و یمن را به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع کرد. این فرمان همچنین ورود پناهجویان را به مدت 120 روز معلق می‌کند. این حکم در چند دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن عملا متوقف شد. با این تصمیم امروز دیوان عالی تا زمان رسیدگی این دیوان به پرونده در حدود چهار ماه دیگر اجرای بخشایی از حکم مهاجرتی آقای ترامپ دوباره آغاز می شود آقای ترامپ که هدف از فرمان مهاجرتیش را بهبود امنیت در آمریکا عنوان کرده تصمیم تازه دادگاه را پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا خوانده. آقای ترامپ گفته که این ممنوعیت 72 ساعت پس از تعیید توسط دادگاه به اجرا گذاشته خواهد شد دیوان آلی آمریکا میگوید معنای عملی تصمیم امروزش این است که فرمان مهاجرتی نمی‌تواند علیه شهروندان خارجی اعمال شود که دارای روابط اصیل با شخص یا شرکتی در ایالات متحده هستند. آبرویزی دیگر برای اداره مهاجرت آلمان، یک خانواده اوکراینی که ادعا کرده بودند از سوریه به آلمان آمده بودند، بدون آنکه زبان عربی بلد باشند، قبول می‌شوند و به هم و به هم کمپی های خودشان میگویند مسئولین آلمانی ساده هستند و همین باعث میشود به گوش مسئولین برسد و آنها اوکراینی هستند نه سوریی و قبولی آنها پس گرفته خواهد شد یک خانواده اوکراینی که ادعا کرده بودند از سوریه به آلمان آمدند به عنوان آواره به رسمیت شناخته شده بودند اما پس از مدتی دروغ آنها اثبات شد از یک خانواده که در ماه سپتامبر سال 2014 به آلمان آمدند به عنوان آوارگان سوری که تحت تعقیب هستند تقاضای پناهندگی کردند. اکنون دادگاه شهر مستر آلمان در این مورد تصمیم میگیرد زیرا دروغ این خانواده فاش شده. پس از اینکه این خانواده اوکراینی از مهاجرت آلمان در نورنبرگ جواب مثبت دریافت کردند به کمپ آوارگان در منطقه مسرلند غربی داده شدند. این شهروندان اوکراینی در برابر آوارگان دیگر به افتخار به این افتخار میکردند که با وجود اینکه توانند به عربی صحبت کنند به عنوان پناهجویان سوری به رسمیت شناخته شدند. آنها به آوارگان دیگر می‌گفتند که حق زدن به مسئولان آلمانی چقدر کار ساده است. در پیان اداره مهاجرت به تاریخ 13 آوریل سال 2016 تقاضای این خانواده را رد کرده و پاسخ مثبتی را که به تاریخ دو مارچ 2015 به آنها داده بود پس گرفته به این ترتیب این شهرفندان حق پناهندگیشان را از دست دادن و تقاضایشان رد شده حالا این خانواده علیه این تصمیم جدید شکایت کردند و به اصل حفظ اعتماد رجوع می براساس بر اساس این اصل اعتمادی که یک شهروند به نظام و قانون حاکم دارد باید حفظ شود میزان حملات بر اقامتگاه های پناهجوان کاهش یافته در سال میلادی جدید میزان حملات بر اقامتگاه پناچوان در آلمان به وضوح کاهش یافته حزب چپگرای آلمان از احزاب دیگر این کشور میخواهد که موضوع پناچوان را در مبارزات انتخاباتیشان به کار نبرند به اساس این گزارشات اداره فدرال امور جنایی آلمان از سال جدید میلادی تا میانه سال گذشته در سراسر این کشور جمع 127 روی داد زده پناسجوی روی داده این در حالی است که در دو سال گذشته در اوج بحران مهاجرت میزان سوی قصف و علیه قامتگاه پناسجوان به مراتب بالاتر بوده است در سال 2016 در سراسر آلمان 995 جرم جنایی و در سال 2015 1031 جرم جنایی علیه قامتگاه پناسجوان سب کشته موقعیت دشوار مهاجران در بازار تبعیز آمیز مسکن آلمان نتایج پژوهش دو ساله دو سالانه آلمان نشان می دهد که مهاجران متقاضی اداره اجازه خانه در این کشور به شدت مورد تبعیض قرار میگیر. در بازار مسکن آلمان شهروندان با نامهای عربی و ترکی از شانس به مراتب کمتری برای گرفتن خانه برخوردارند هفته نامه اشبیگر و فرستنده رادیویی بایرن در یک پروژه تحقیقاتی مشترک طی چند هفته چند هفته افرادی را با نام های آلمانی و غیر آلمانی به جستجوی خانه در و آپارتمان های اجاری فرستاد. نتیجه این تحقیق چیزی است که از سالها پیش از زبان بسیاری از مهاجران شنیده شده، اما ابعاد آن به روشنی مشخص نبود. شهروندان خارجی و خارجی تبار موارد زیاد یا تپعیزی را روبرو شوند. در این پروژه برای آپارتمان هایی که به صورت آنلاین برای اجاره آگهی شده، هزار، تقاضا با نام های آلمانی و غیر آلمانی فرستاده شده که تنها با 800 مورد آن پاسخ داده شده در این درخواست ها مشخصات افراد نظیر سن و شغل یکسان قید شده و تنها از طریق نام متقاضیان میشود. تبار آلمانی لهستانی ایتالیایی ترکی یا عربی آنها را حد زد در این بررسی موارد تبیز ارزیابی شده که متقاضیان اجازه یک اجاره یک واحده مسکونی مشخص با نام آلبانی برای بازی دعوت شدند، اما با نامهای خارجی خیر. به گزارش کانال یک تلویزیون آلمان در نمونی که تایید کننده ای نتایج این پروژه از جوان 24 سالهی که دارای شغل و درآمد ثابت بود در شهر مونیخ 270 تقاضا برای اجاره خانه ارسال کرده بدون موفقیت ظارا مشکل اصلی تبار سنگالی این جوان بوده و آخرین خبر از یونان پلیس یونان اعلام کرده که شماری از مهاجران را با پاسپورت‌های تقلبی دستگیر کرده این افراد در تلاش ورود به اتحادیه اروپا بوده که در میان آنها افغارها نیز شاملند پلیس یونان روز دوشنبه گزارش داده که آنها برخی از مهاجرانی را که به گونهای غیرقانونی در تلاش وارد شدن به اتحادیه اروپا بودند بازداشت میکنند این افراد گذرنامه های جلی در دست داشتند که شمارشان 18 تن بیان شده به گفته پلیسی یونان این مهاجران شهروندان کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، کامرون و تونس بودند شدگان از طریق میدان هوایی هراکلون در شمال جزیره کرید در تلاش بودند که خود را به آلمان، ایتالیا، هلند و سوئیس برسانند مقامات گفتند پس از آغاز فصل ماه جدید آنها توانستند دهها مهاجر را با اوراق جعلی در فرودگاه های کرفو و جزایر متعدد, متعدد اژه بازداشت کنند به بیان مقامات پلیس این افراد امیدوار بودند که به دلیل انبوه بزرگ تردد احتمال پاسپورت‌های جعلی ها مورد توجه جدی قرار نگیرد پایدار و سفرهاتون پرنما